حدیث بعدی حدیث هشتم حدیث الخراج و بالضمان این حدیث بحثش طولانی در کتاب بیوع ما میخونیم هم در بلوغ الامر هم در ان دو تا احکام اصل الخراج و بالضمان خراج خرجی که یعنی اون اول ما یقین اصلاح میتونیم بگیم خرجی که ما از،, از زمین استفاده میکنیم یا از غلی یا از دامی یا از خرید فروش معامله که با شرط بوده مثلا من مثال میزنم با مثال فهمیده میشه مثلا شما مثلا رو با شرط میخری مثلا من حیون رو میخرم تا تا یک سال حامل بشه اگر یعنی نشد بهت بر میگردنم خب تو این یک سال مثلا حیوان شیرده هست شیر بهت میده مثلا یا استفاده حمل و نقل ازش میکنی کاری ازش میکشی خب اینجا خرجی که داره بهت میده بابت اون خرجی این خرجی که الان حاصل شده در این یک سال اگر یک سال گذشت با توجه به اون شرطی که گذاشته شده الخراج به ومان این در مقابل ضمانتی که نسبت به مال داره مثلا بالفرز اگر این بوزی که من خریدم که در طول یک سال حامله بشه مثلا با این شرط خریدم یا فلان اب درش نباشه این عدم حامله شدن. اگر توی یک سال حامله نشد مثلا من بهت بر میگردنم خب این شرط ما گذاشتیم خب اگر قبل از یک سال تلف شد مرد این ما زامنیشیم یعنی من خریدار زامنشم زامن چی؟ یعنی به زمان برمیگرده به اون خریدار یعنی خرجی در مقابلش مثلا بالفرز حال اگر یک سال گذشت ولی خوب نمرد حالا اون قضیه زمان ضمانت به گردن خریداره خراجش باز هم خریدار برمیگرده در صورتی که چی مثلا به فرض من رو در یک یک سال بردند هامل نشد خب طرف میگه خب پس یک سالش کار کردی رو به بده میگیم خیر بابت زمانی که ما کردیم تزمینی که کردیم یک سال نگهش داشتیم نه مرده سالم تحویله دادیم اون خرجی هم مال ما خودمونه یعنی خرجیش مال خودته حالا این به نسبت زمین هم, هم میتوره به زمینی میخری شما به شرطی که چه آب داشته باشه اگر تو یک سال آب چاه آبش خوش شد مثلا این زمین رو باید برمیگردونم. خب تو این یک سال شما کشت و کشت میکنیم مثلا بلفرد میکاری آبم هم میده دیگه وقتی که اگر تو اون درفی یک سال اگر چاهش مثلا خوش شد زمین رو برمیگردی خرج کم از زمین بیرون اومده مال خودته این خلاصه شرح این حدیث